در حال بود گفتیم حال غالبا منتقل است و غیر قالب ثابت و دارم غالبا مشتند است و غیر قالب جامع غالبا حال غالب مقارنه است و در غیر غالب غالب مقدر این موارد رو بحثش رو کردیم مثال هم حالا میگه وله اصل اصل یعنی باز همون مایم بقیعا یکون یعنی اون چه که اگر تبقه او بیاید جای سوال نیست برخلافش حتما باید سوال شد وله اصل و تأخورها انصاحب اصلش اینه که حال موخر باشد از صاحب حال که بهش میگن زلحال حال از زلحال مؤخر این تو اگر من گفتم جا از زیدون راکبن این تو بست و راکبن حال است از برای فتبستم از زاقی کن زاهیکن حال است از زمیر داخلی تبسمه که به سلنگان میکنی اصل تأخر حال است از زلحال خوب هست میگه گاهی این واجب میشه و یجب و امکان مجرورا و واجب است این تأخر امکان مجرورا اگر ذل حال ما مجروره واجب است که حال بر او چی بشه مؤخر بشه اگر ذل حال مجرور است واجب است که حال بر او باخر بشه ذل مقدم مثال مرره تو به مره تو به زهیده مره تو به زهیده قائمان از اینکه قائمان حال باشه از برای چی؟ از برای زید حالا شما میتوید واسخواد که خوب نشون بدید بینیمسید مره رو تو به هند هندل قائمتا شخص شد چی شد؟ تو به هندن قائم تن حالا ممکنه مجرور به چی باشه؟ به اضافه باشه یعنی مزافون اله زرحال باشه مثل ایوهب اهد و کن. ان اکولا لحم اخیه میتن ایوهبو یعنی آیا دوست میدارد احد و کم, احد و کم آیا دوست می داره یکی از شما چی رو انیا اکولا, انیا اکولا. که لحم اخی گوشت برادر خودش رو میتا در حالی که اون برادر این الان میتن حال است از باره که اخ مضافم الی مجرور به اضافه و این میتا باید مؤخر باشه مقدم بگید مشخص و یجب و انکان مجرور واجب است اگر مجرور باشد حال. و یمتنه او یمتنه او یعنی چی؟ ممتنه است که حال مؤخر بشه یعنی باید چی بشه؟ مقدم باشه ممتنه است که حال مؤخر بشه باید مقدم بشه یمتنه او انکان نکرتن محزتن یعنی انکان حال صاحب حال اگر صاحب حال نکره محزه هست آه. واجبه که حال برو چی بشه مقدر بشه تا مصبق پینام حال هم در واقع مثل خبر حمل میشه به چی؟ به زنها اگر گفتیم کان چیز جا رجلون راکبند مخواهیم بگیم مردی سواره رسیم جا رجلون راکبند این غلطه باید گفت چیم جا راکبند چون چون زلحالمون رجل نکره یه چیه محزه هستش لذا پس باید چه کرد باید حال رو برون محقه شدنش بود حالا یه موقع وقت نکره محزه نبود یعنی نکره چی چی بود مخصصه مثل که بگیم جا قلام مرجلن. رجلن جا قلام و رجلن این درسته محقه هم درسته چرا چون قلام از رجل کسبه چی کرده تفسیز پس برای ممتنه است. اگر زرحال ما نکره پس قایده و قانون اینه که حال معخر از حال باشه چرا چون مخواد بر او حمل باشی؟ مثل خبر که قایده اینه معخر باشه مثل صفت که قایده اینه که معخر باشه اینا هر سه حمل میشن به صاحب خودشون و واجبه یک جا که حال حتما معخر از حالش باشه اونم جاییه که چیز حال مجرور باشه حالا مجبور به حرف جرگ و مجبور به و ممتنم هست یک جا که حال معخر باشه حتما باید مقدم بشه یعنی خلاف احسید کنیم اونم هم که زلحال نکره یه باشه میگه وحوه قلیدون البته میگه این قلید است کدوم قلید است؟ این که زلحال نکره یه محضه باشد این قلید است چرا قلیده؟ چون ما واقعا اگه یک کسی رو خودش رو نمیشناسیم اصلا ها؟ این چی نمیشناسیم؟ نکره محزست خب حیعت اون هم به درد ما زیاد نمیخوره معمولا ما حیعت و شکل و چگونگی چیزی رو بیان میکنیم که چیه؟ میشناسیمش چیزی که اصلا دردها نمیشناسیمش این رو بخواییم حیعتش رو بیان کنیم این حیعتش زیاد مفید مگه این که یک زمانی تصور کنیم که یه جایی مثل جا عراجلون راکبند مردی سواره رسید به همچین تیپی تو ای تو جایی منتظر بودیم تا یه مردی با سوار سواره بر از بیرسه گفتیم بله الان یه مردی سواره رسید نه هم جا عراجلون راکبند که اینطور نمیدیم میگیم نه هم جا عراجلون اگر موردش اتفاق افتاد که نکره نیاز به بیان حیعت داشت اونم نکره یه محضه که قلیل رو ل... ما چه میکنیم؟ حال رو برزرحال ها... خب و اولت قلیل رو یعنی قلیل رو در استعمال در استعمال رو خب و یجب و تقدمها علال آمل حالا اینجا بحث میکنه میگه واجب است که حال بر عامل خودش نه حالا بر عامل خودش یعنی فعلی شپه فعلی که در اون عمل کرده مقدم باشه و یجب و تقدمون حاله علل عامل بر خود عاملش امکان لحظ صدرون اگر برای حال چی باشه؟ صدارت باشه. اگر حال از چیزهایی که دارایه صدارت واضح بر عامل هم اول اولی مثل چی؟ نه رو جا از زیدون الان میدید کیفه اسم استفهام مبنی بر فت محلن منصور حال از برای زید حال از برای زید جا اینجا کیفه واجب است که بر که آمله مقدم بشه به چه دلیل؟ چون اگر کیفه معخر باشه اون موقع ما قبل صدارتدار در رو عمل جدی صدارتش از بین اینجا واجب است چون؟ بگیم کیفه جاک؟ کیفه تکفرونه به لا کیفه نو کلم و منکانه فل مهده سبیه یا با مواردی بگید کیفه سوال از هیئت میکنی سوال از هیئت حال باقی جو جوابش حال میان الان کیفه جا از یعنی زید در چه آمد جوابی که شما میدید بگید چی؟ جا از ایدون واقعا زید آمد در حالی که گریان بود در هیئت گری آمد. خب سوال جواب با هم مطابقا دیگه الان تو جواب با کیم چه نقشی از اعراب داره؟ حال خود تو سؤال همکیفا معادله اونه چی داره؟ حال من فقط مبنیه منصول بودنش میشه اینجا یه بحثی میکنه که این لزوم داره که یاد بگیرید. حال آیا از برای مضافل علی میاد یا نمیاد؟ ما گفتیم حال بیانه چی رو میکنه؟ حیعت فائل؟ هی مفعول و قیلی گفته هی مبتدا شو شو هی عته خب. حالا حال که بیانه هی عته فایل معفول نداره میکنه آیا میشه حال از برای مزافون الهی هم اگه یعنی مزافون الهی میتونه زول حال واقع شه میگه در سه جا مزافون الهی زول حال واقع میشه در سه جا مزافون الهی زول حال واقع و یک حساب مزافی لا تجیعو یعنی لا تجیعو کی؟ حال حال نمی آید ان المزافیل از مزافیل لا تجیعو زمین هیش می به حال نمی آید حال از مزافیل از ان المزافیل الا مگر که الا وقتی که اضافه الا اضافه سح هم مقام المضاف مگر جایی که صحیح باشه مضاف الیه را بذاریم جای مضاف معنای جمله تغییر نه. معنای جمله همون باشه مشخصه معنای جمله تغییر نکنه اگر مضاف حذف شد یعنی در واقع اینجا انگار مضاف الیه رفته جای مضاف شده مثال کنید نه بل نتبه بل نتبه ملت ابراهیما هنیو ملت یعنی دین دین روش آیین بل نتبه و نتبه ها یعنی چی فیروی میکنیم بلکه ما از خدایان شما بیزاریم و ملت ابراهیم رو که دین حنیفه ازش خیلی نتبه فلم زمیر نحن و مصدتر و نتبه ملت هم افعوله است ابراهیم مضافن علیه ملت غیر منصرف کده شده ابراهیم اولت هم مفعوله نتبه حنیفه حال است از برای ابراهیم آیه برآن حال است از برای ابراهیم حالا از برای مضافونه در و اینجا امکان دارد که ملت را از کنیم ابراهیم رو جاش معنا هم درسته الان معنای جمله چیه؟ پیروی می دین ابراهیم را که اون ابراهیم حنیف بود حنیف یعنی کسی که از باطل رو گردان است و به حق گرمی حق گرام و بیزار از باطل زده جنیفه جنیف یعنی کسی که از حق رو گردان شده رفته به طرف باده. میگه ما پیرو به دین ابراهیم هستیم اون ابراهیمی که همه ی بودها ازش کناره گرفت و به سوی خدای تعالی رو یک تا گراه حق گراه حق الان اگر ما بگیم ما تبعیت میکنیم ملت ابراهیم رو که حنیف است این جمله اگر بگیم ما پیروی میکنیم ابراهیم رو که حنیف است معنیش پاس چیه؟ همون. چون ملت و ابراهیم لازم و ملزوم هم. مشخصه؟ لازم و ملزوم. اگر شما بگید از دین ابراهیم پیروی میکنیم این میشه حقیقت اگر بگید از ابراهیم بیروی میگیم این میشه مجاز چرا تو از خود ابراهیم که بیروی نه از دینش داریم بیروی میگیم دروسته میشه چی مثل این ایمیونه شما یک بار میگی چی میگید خورشید ما را گرم کرد یک بار میگید حرارت خورشید ما را گرم کرد جفتش چیه یکیش حرارت خورشید ما را گرم کرد میشه چی حریقت حریقتش جمله حقیقیه همه چی سر جای خودشه حرارت هم برای خورشید لازمو منزوم بود با خورشید یا والا میگید خورشید ما رو گرم کرد بازم منظورتون چیه حرارت پس اینجا امکان دارد که ملت رو حذف کنیم و ابراهیم رو جاش بگذاریم چه بگیم ما از محمد پیروی می چه بگیم ما از دین محمد پیروی می کنیم دو, دو جمله معناش اگر مضاف را حضب کنیم مضاف و نده بذاریم معنا چیست؟ زید. خب این مورد اول که در واقع مضاف لازمه مضافون ملت لازمه ابراهیم حرارت لازمه خورشید واقعی. او کامل مضاف بعضه یا مضاف بعض از مضاف و او کانل مضافو ده از مضاف بعضی از مضافن داریم مثل بگو ببینم اعجبنی اعجبنی یعنی شیفته کرد مرا وجه به هند روی هند صورت هند راجبتا در حالی که اون هند چی بود خب این راجبتا معلومه که حال است از برای هند چرا چون وجه مذکره من میتونم راجب اصلا صفت وجه باشه. حال از برای مضاف الی هند سوار گونه نه صورتش خب ولی چطور ما تونستیم از هند مضاف الی راجبتا رو قال بیاری به این دلیل که مضاف که وجهه بعضی از مضاف الی که صورت یک نفر بعضی از اون دیگه نیست. ا و ما را هم درست اگر ما وجه رو حذف کنیم یه بار میگیم عجبتنی وجب و راکبتن یعنی صورت هند در هنگام سواره منو شیفته خودش کرد یک بارم میگیم عجبتنی هندون راکبتن هند منو شیفته خودش کرد ها هند منو شیفته خودش کرد یعنی چی؟ یعنی صورتش مشخصه؟ چون از هر جمعان در صورتش نشون جز اکنه من به جای این آی مثال یه مثال قرآنی زدم کنم بود با احدو کن ان یع کلا لحم اخیه لحم یعنی گوشت گوشت پاره از اخه آه. اخ دارای گوشت هست لحم است، هست استخان شحم هست پی دم هست خون هر انسانی هره حیمانی شامل این است لحم و عزم و شحم و دم لحم بعضی از اون یک چالو میشه لذا چطور تونسته از اخ مزافنه در حال بیاد چون مزاف تاره ای از مزافنه بگه چه میگفت آیا دوست دارید شما بخورید گوشت برادرتان را که مرده یا بگه بخورید برادرتان را که مرده خب معلومه بخورید برادرتان را یعنی چی؟ گوشت این رو به ما یک آیه گناهی میسید این هم مورد دو خور. او کان آملن فیلها یا مضاف عامل در حال باشد یعنی خود مضاف عامل باشد در حال مثل این نگاه کنی نفو عجبنی زهاب و که مصره عجبانی یعنی شیفته کرد مرا رفتن تو این زهاب مستر اضافه شده به فایلش رفتن تو در حالی که چی هستی؟ بگی شتاب کننده مصرعن اولا مصرعن حال است از برای کاف زهاب رو کرده. ولی چون زهاب مستر است اضافه شده به فایلش و عمل کرده در حال چون مستر عمل میکنه دیگه مصرعن رو کی نست داده؟ زهاب لذا در اینجا احتمال آمدن حال از برای مضافان علی هست مشخص ها تو قرآن داریم الیه مرجع و کم جمیعن. این هم قرآن داره بهتر بود شیخ به جای این مثالها آیات مثال ها آیا که مثال میزن الیه مرجع و کم جمعی خبر مقدم جوال مجموع متعلق با آمد مقدم خبر مقدم مرجع او یعنی رجوع او کم. مرجع مستر می نیست یعنی رجوع او کم. اضافه شده به کم فاقیدش یعنی به سوی خداست گشتن شما رجوع شما در حالی که چیه؟ دست جمعیست همه و همه جمعی حال است از برای کم مزاخن الک زیرا که چی؟ زیرا که عمل کرده در چی عمل کرده؟ در جمیر چی عمل کرده؟ مرجه مستره می تمام شد. سه موردی که از مضافن علای میتونست از زامن هشتون از منصوبات از زامن از تمکیز چیه؟ تمکیز اینه خوندیم ها به طور کامل در کتاب به واحد نکره تو ارافتو لنبهام تعریف می اول میگه تمیز عبارت است از اسم نکره ای که ارافتو لنبهام رب دهنده است، برتر از برطرف کننده است، ابهام بود. حالا یادتون باشه یک بار ابهام از ذات می کرد، ذات رو ابهامش برمی‌داشت، یک بار هم ابهام از نسبت می گه، ها؟ تو و بیشتر از واسو عرافت و لر ابحام المستقر انزات او نسبت ام. ابحامی که المستقر استقرار دارد وجود دارد حالا رفت میدهد این ابحام رو ابحام مستقر رو از چی؟ ان ذات مثل اندیر رتنون زیتن پیش من نیست رتنون زیتن از جهت چی؟ از زیدن میاد ابهام رد رو برمی یا نسبت مثل اشته علی الراس و شکن تا بزیدون نفس و مزمامه پس نکره ای که رفتهنده دهنده باشد که موجود است مستقر است اون هم رفته دهد این ان متعلق به رفع رفت دهنده است ابهام رو از چی از ذات یعنی اسم ذات یا از نسبت یعنی اسناد به مستدا و مست. خب تمیز ایست رث میده. حال هم رث ابهام میکنه. فرقشون چیه؟ هر دو هم منصوبند. هر دو هم فسلند. هر دو هم اسمند. هر دو هم نکرند. فرقشون چیه پس؟ میگه و یفتر قعن الها تمیز جدا میشود از حال ببین خصوصا به اکثریت خصوص جموده به اغلب بودن جمود تمیز یعنی تمیز 99 درصد چیه 90 درصد 95 درصد جامد گفتیم چند 90 درصد مشتق یادتونه نیست خود این غالبا مشتق است خب به اکثریت جموده یک بعد و عدم مجیه هی جملتن همیز یک موقع جمله بگی نیست. همیشه اسم نکره اصلا. اما حال میتونه چی باشه جمله باشه مسته. حال میتونه این هم فرق دو و عدم جواز تقدم هی تمیز وقت مقدم البته بعضاً در مورد تمیز نسبت قبول کردن اونم هم طور فریم بعضاً گفتم نه اینو جز ضرورات شده واسه دزایشون گفته الان اصل خب تمیز هیچ وقت بر عاملش مقدم نمیشه اما حال چی؟ حال مقدم میشود حال بر عامل خودش مقدم اصلی بود که معقد میشود باید که اوقات خلاف اصلاً و عدم و جواز تقدمی حالا عامله حالا اصلا تمام شد این هم فرق سه ف... فرقی هم باز دارن و حال رفع ابحام از حیعت میکنه از غیافه و چگونگی ها حیعت اما تمیز رفع ابحام از چی میکنه؟ از ذا از کنهشه غیافه رو بایان نمیکنه جنسشو میگه از چیه؟ مشخص؟ حال رفع هم از حیعت میکنه یا بگو بیان حیعت میکنه اما تمیز بیان ذات میکنه خود جنس رو بیان میکنه اینجا از این جهت هم با هم فرد برن دیگری هم درن دیگر که اینجا حالا اگر یک زمانی حال تمیز مشتق بود یه چیزی بود مشتق فعن کار مشتق حالا اگر تمیز مشتق بود حال حالیتش هم احتمال داده میشه مثل کفا الله شهیدن یادتونه؟ کفا الله شهیدن گفتیم کفا فه بابای زائده الله لفظا مجروم محلا مرفوم فاعل کفالله شهیدن بعضی گفتن حال، بعضی گفتن چی؟ تنیز. چون مشتقه. ها؟ کفلا بعضی گفتن این حال است. خب اونایی که گفتن حال این مشتق هم هست، چی حرف بدی بگی؟ نزدن فقط اشکالی که بهشون کردن گفتن این میشه کافی است خدا ها؟ کفایت داره خدا در حالی که شاهده است. در که شهید است، گفتن مفهومش این میشه که چی؟ اگر شاهد نبود بس کفایت؟ نداره، این غلطه این حال حاله، بگید حال دائمه است که الان خوندیم، حال ثابته هست یعنی امکان ندارد کفا و الله باشه و حالش شهیدن نباشه این حال حاله دائمه و ثابت است، پس اشکالی بهشون نیست بعضی چون این اشکار دیدن گفتن برگشتن گفتن چی شهیدن حال نیست بلکه چیه؟ تمیزه یعنی خدا رو کفایت میکنه از جهت چی؟ از جهت شایده کفل الله میگه شایده میگه فعنکان مشتقل حال. احتمال حال احتمال حالم در تمیز داده تمیز احتمال حالیت باهم فعل اولو یعنی تمیز اول اول کدوم بود؟ تمیزی که از ذات رفع ارخان میکنم درست شد؟ فر اولو یعنی اونی که از ذات رفع ارخان میکنم یا مقدار یا بگیر غیر مقدار یادتون تمیز فر اول ان مقدار غالباً تنیز اول از چی رفع می میکنه؟ از مقدار مقدار یادتونه شامل چی میشد که؟ کل میشد، وزن میشد، مساحت میشد آه؟ یادتون افتاد؟ میگه از مقدار لفع افهم میکنه غالباً یعنی 90% از مقدار یعنی مقداریات رو بیان میکنه گوه اوقات از غیر مقداره غیر مقدارم یادتونه؟ مثل چی بود؟ مثل خاتمان فزتن غیر مقدار ول خفزو خفز یعنی چی اضافه کنیم و مجرور بخونیم تکرار همونها یک توی ادایه خونیم ول خفزو قلیلون در صورتی که از مقدار برای رفع افغام میکنه اضافه بکنیم چیه؟ قلیل است یعنی مثلا میگه اندی رتلون زیتن اگر بگیم اندی رتلو زیتن این چیه؟ قلیل مقدار کیل بود وزن بود عدد بود مساحت بود درسته؟ در اینها در عددش که محار اضافه بشه اونیچ در بقیهش اگر اضافه بشه مثلا بگیم اندی منوان اصلن به جایی که بگیم منوان اصلن این میگه چیه؟ قلیل ولخفز و قلیل و ان غیر مقدار و تمیز از ذات از غیر مقدار هم رفع افغام میکنه. از غیر مقدار غیر مقدار مثل چی اندی خاطمون از غیر مقدار قلیلا تمیز ذات از غیر مقدار چیه تمه اکثرا است مقدار و شبه مقدار پس تمیز ذات از چیه مقدار غیر مقدار که شبه مقدارم داخل در مقداره در موقعی که از مقداره اگر عدد اضافه شدن احتمال نداره اگر غیر عدد اضافه شدن چیه؟ قلیله اما خود تمیز از مقدار چیه؟ قلیله یا کسیله؟ کسیله، خالب تمیز از غیر مقدار مثل خاتمان فزتن این نوع تمیز یا کسیله؟ قلیله خفزش چی؟ اضافه کردنش کسیله کسی كثيرون اگر بگیم خاتم و فضتن چیه خیلی زیاد والخفزو اضافه کردن و مجرور خوندن تمیز زیاد وسانی دومی دومی کدوم بود تمیز از نسبت وسانی ان نسبت تمیز از نسبته حالا فی جمله نسبت در یک جمله باشه او نحوه ها یا نسبت در یک شبه جمله باشه نهوه جمله مشخصه شبه جمله مثل اینکه الان با... زیلون مبتداد تیبون چیه؟ خبرشه تیب صفت مشبه است. یه زمیر و هو هم داخلشه نسبت تیب نسبت تیب به زمیر داخل شه مبهمه آه. نسبت اسناد تیب به زمیر و که توشه مبهمه لذا نفسن اومده چه کارش کرده رفت پاک اون مال نسبت این ماله اون مال نسبت در جمله تاب و زیدان نفسن این نسبت در نحوه جمله شبه جمله یا در اضافه نسبت اضافی مبهمه مضاف و مضاف و لده هم افتباهات پیدا کردن ارتباط بین این دوتا چیه؟ مبهمه آه. ارتباط بین این دوتا مبهمه پس تمیز از نسبت از چه چیزایی میاد؟ یک جمله دو شبه جمله سه نسبت اضافه حالا نگاه کنید مثال میزنه حالا بینید مثالها رو میتونید درست کنید یا نه؟ و اندی رکلون زیتن این مثال کدومه؟ مثال مقداره این مثال مقدار که زیتن اومده داره قتل رو بیان میکنه که مقداره کهیله این مثال مقدار آیا در کلام عرب تمیز در این مورد زیاد میاد یا کم میاد خیلی زیاد غالبا اما جر دادن اضافه کنیم لفظ رو به زیتون کم دنینا رضا گفت چی گفتش که ان فل اولو ان مقدار غالبا ول خفزو چی؟ قلیلون خفزش؟ قلیلون. حالا زیر اندی رتلون زیتن اشرون بنویسید یعنی اندین اشرون رجولن منوان اصلا بنویسید منوان اصلا شبرون ارزن شبرون ارزن زمین این چیه؟ چرا اینها رو گفتم؟ چون مقدار فقط کل نیست عدد هم هست وزن هم هست منوام مساحت هست شبر یعنی چی؟ وجب اندی شبرون ارزن یعنی یک وجب زمین. مثلا یک کلمه دیگه فرصه فرص شبرون ارزن مثال یکی میزن خب در اینها در عددش که اضافه کردن چیه؟ محاله اما در بقیه اضافه کنیم چیه؟ ها؟ قلیه. قلیه اما خود تمیز توی این رابطه؟ سیاه. مثال بعدی خواهد همون فزتن این مثال کدومه؟ اندی خواهد همون فزتن مالا غیر مقداره غیر مقدار این تمیز از غیر مقدار زیاده یکم؟ کمه اما اضافه کردن چی؟ زیاده میتونیم این خاتم رو درست؟ البته شبه مقدار رو هم میتونستید اون پایین اضافه کنید تو اون افنی رتون زیتن شبه مقدار مثالش چی بود؟ من عمل نسقال زرعتم خیرن یرد که مثالش رو توضیح ده. حالا به سر نسبت مثال‌ها رو دیدیم وشتع ال رأس و شیبن این مثال کدومه اشعره یعنی شعله گرفت رأس یعنی سر خودشون به تنهایی شکونه ابهامی توشون نیست ولی وقتی که به هم میچسبند میشه شعله گرفت سر مبهمه سر چجوری جوری شعله میگیره میگه از جهته بگید ببین مثلا زغال میبونه که سیاه سیاه یک باره انسان روشنش میکنه. بعد از یه مدت می‌بینید تبدیل شد به چی سیویه با هسته شیبن یجد پیری این شیبن میاد رفع کرده راست اشتهر از راسو شیبن این کدوم شد؟ بسانی ان نسبت ان, ان نسبت ان فی چون این مال چونه تابسه یه‌ن اثر اون مسعد کم زده مثالش کدوم زیدون طیبان نفسن زیدون طیبان نفسن. انا اکس رو مالن و اعز رو نفرن انا اکس رو مالن و اعز رو نفرن الان نواه کنین انا مبتدا اکس چیه؟ خبرشه افعال و تفصیل دیگه اینه اکس رو منکم مالن خب اکس رو افعال و تفصیل یه زمین رو چیه؟ خواهی معنای جمله چیه من بیشتر هستم بیشتر هستم از چه جهت ماله اون مالا میا چیکار میکنه نسبت اکثر به ضمیر داخلشو توضیح میده نه یعنی از جهت مال بیشتر هستم نه از جهت چیز و من عزیزتر هستم از چه جهت از جهت نفرات ها تعداد نفر جا تمیز اونجا آمده برای چی؟ شبه جو. لله در روح فارسن لله در روحو فارسن این مثال است برای نسبت اصافی لله جار و مجرور خبر مقدم در روحو در به معنای شیره شیر شیری که میخونن مشخصه؟ عرب این خاصیت رو داره الان هم همینطوره حتی به قول معروف این خصوصیت الان هم حذف شده در اصل هر چیزی که به قول معروف هر کاری رو که یک نفر میکنه و خیر رو به قول معروف انزا میگه رحمت دو شیری که یا به خاطر شیری کنه و اون شیر اول رو منشأ خیرات میدونه و اینطور حالا اینها موقعی که یکی تعجب میکنن این سیغه مال سیغه تعجبه لله در رو. مثلا ما از یک نفر از جهت عصب سواریش خیلی تعجب، عجب عصب سواری. میگیم لله در روحو فارسن للاه در روحو فارسن یعنی چی؟ یعنی برای خداست شیر او از جهت چی؟ فروسیت یعنی اون شیری که خورده شیر انسانی نبوده شیر خدایی بوده وشد چی گفتیم یا نه؟ الان نسبت برای خداست شیرش خب برای خدا شیرش از چه جهت؟ از جهت شاعریت از جهت عصف سوار بودن فارس بودن از جهت کاتب بودن کدوم؟ میگه از جهت فارسان از لله در بهو این جمله کامل نیست مبهمه شیرش از چه جهت خداییست میگه از جهت حالا این فارسان میاد نسبت در رو به زمیر و کار میکنه نسبت اضافی رو توضیح میده شیر او منظور شیر او از جهت سوالکاری خدا روست نه از دیگه گرفتی؟ این هم ماله اضافته حالا ناصب تمیز چیه؟ چیزی که تمیز رو نصب میده کدومه؟ میگه و ناصب و لی مبین نصب دهنده برای تمیزی که مبین ذاته یعنی چی؟ یعنی مثلا در ریتولون زیطن چی زیطن رو نصب داده؟ هیا์ خود اون زاد کی نصب داده؟ رتولون یعنی الان زیطن به کی درش عمل کرده؟ رتولون عشرون رجلام کی در رجلام عمل کرده؟ عشرونم در تمیزهایی که رفع افهام از زاد میکنه در در خاتمون فزتن کی؟ خاتمون در تمیزهایی که رفع افهام از زاد میکنه کنه به تمیز خود اون؟ ذات خودش طالب بشه نسکوشن از اگه از آن برسیدن ناصب تمیز در اندی رتلون زیتن چیه میگیم چی؟ خود اون اسمه مپن خود اون ذات و ناصب و لی مبین نسبت در مبین نسبت ناصب کیه آمن در تمیز در نسبت کیه؟ میگه وله مبینه نسبته خوال مصند مصند جنبه یعنی در اشتهالن رهز و شیبن کی شیبن را نزداده؟ اشتهالن که مصند جنبه هست الهرز مصند در زیدون تییبون نفسن کی جا نزداده؟ تییبون انا اکثر و مالن کی؟ اکثر مشخص شد؟ وله مبینه نسبته خوال مصند حالا مصند منفعله؟ از مصند های فعلی باشه مثل اشترللرس و شیبن مصند فعل باشه یا شبه, شبه فعل باشه مثل چی؟ مثل انتیبان که تیبان شبه فعل است و نه است پس بنابراین تمیز ذات رو بیان کردیم تمیز نسبت رو هم بیان کردیم و گفتیم در تمیز ذات آمل خود اون اسم مبهنه و در تمیز نسبت عامل. اون مست ند حالا فعل باشد یا چه فعل و سلم الله جلسه 15 اون محمد روز رو در کتاب عوام ابتداییه هر دو کتاب خوندید لذا دقیقت کنید مطلب تکراریست است، بوش کنید نقاطش رو بگیرید یادداشت داشتات رو بردارید اینجا به طور خلاصه ردیف تر و مناسب تر نوشته شده ام نوه سالسو ما یرد و مجرورن لا قیرو نو سبون اسامی است که وارد میشه فقط مجرور در حالی که مجروره غیر مجرور بیست مایره دو مجروره لا قیرو وحوه اصنان و چند تاست؟ دو تاست و وحوه اصنانه یکیش مزافون الیهه و یکیش مجروره به حرف جر ال اول و اولی الیه اولین اسمی که مجرور نیاد و غیر مجرور نیست مزافنه لکی مزافنه لکی چیه؟ تعریفش بود میگه وخوبه و مزافنه چیزی است که وخوبه ما نسبه الهی هشه چیزی است که نسبت داده شده به سوی او چیزی خب تا اینجا شامل فعل و فایل هم میشه فعل و نای فایل هم میشه مبتده و خبر هم میشه صفت و محصوف هم میشه حال و حال هم میشه اینا همشون نسبت داده میشه چیزی به چیز دیگر اما با این قید همه خارج میشه به واسطت حرف جرل مقدرین به واسطت حرف جرل مقدرین اونم با یک